فصلی سپتاهم روز 11 همه ماه اوت دیشب گفتگو با مهمانان راه دور را به بعد موکول کردم زمان شام رئیس کارخانه در قضاخاری شرکت درباره وضعیت زغال سنگ در آوار سوخت گزارش دادم در عین حال پیشنهاد کردم که شرکت ما زغال سنگ را به شکل مستقل و جداگانه تهیه کند درباره بیلچه و برک های اکالیپتوس هم گزارش دادم. چیزهایی که گفتی برای چه بود؟ ظاهراً تو کارها را مسخره گرفته‌ای. نظامیان شعبه تأمین لباس برای چند بار اوجینا را باز نمی کنند. مسئله این است. آیا نباید درباره این موضوع توضیحاتی به دست میآوردی و چه رفتار نکردی؟ اصلا نظامیان چگونه فکر می کنند؟ واقعا خلاف انتظارند. رئیس احساساتی شده. بود. در حالی که برای باز کردن کنسرو دستش میلرزید اینها را گفت. شام ای بود. غذا اصلی مخلوط 70 درصد بلغور و سی درصد سبوس بود. اما چاشنی غذا گوشت گاو هایی بود که برای هدیه به شرکت زغال سنگ برده و برگردانده بودم. هیچ وقت غذایی با چنین تعم درجه یکی نخورده بودم. گوشت قهوه‌ای رنگ و شیره کهربایی چاشنا آن آن را راه میانداخت و بویش هوش از سر آدم میپرند. خوردن چنین غذای خوشمزه ای در شهر سوخته بسیار ترزناک بود. کنسرو را که باز میکردی بیشک گلهی مگس جمع می شد. دیروز آقای تاشیرو رئیس کارخانه کنسرو سازی گفت وقت نهار در آوار سوخته هنگامی که کنسرو را باز کردم انبوه مگس آمدند و در یک لحظه آن گوشت به نظر زرد رسید. دلیلش این بود که مگز ها تخم تخم‌های زردی گذاشته بودند در حالی که بوی تعفن بقایای سوخته وجود داشت مگس‌های بیشمار نشسته بر اجساد هم حالت را به هم میزدند. از عقب که نگاه می‌کردی کوله پشتی تر و تمیز و شسته ای که آقای تاشیرو به پشت داشت به خاطر انبوه مگس‌های نشسته بر آن انگار با نخی سیاه بسته شده بود شاید بسته پشت خودم هم همین گونه بود من و رئیس گوشت را مساوی تقسیم کردیم و خوردیم هر دوی ما یک کاسه بزرگ از غذای جایگزین برنج خوردیم وسط خوردن غذا یکی از کارگرها به نام نیشینا گورو برای درخواست تلاوت سوت را در مراسم تطوین آمد و گفت همین الان مرد غذا که تمام شد میآیم نیم ساعت تا یک ساعت دیگر میآیم این حرف را که زدم نیشینا به قوطی کنسرو خالی روی میز نگاه کرد. و حالت سرزنش آمیزی به خود گرفت هرچند یکی از کنسروهایی بود که رئیس کارخانه برای حفظ روابط نگه داشته بود اما رئیس به جای تازیه این بنیشینا گفت آقای شیزوما قضایت را که خوردی دهانت را شسته تطهیر کن و برای تلاوت سوت را برو لطف کن امروز جملات حاکاتسو را بخوان کارگر نیشینا آب دهانش را گرد داد مرده سی ساله خواهر زن نیشینا، بیوه و نامش میتسودا ساکی بود با توجه به گفته های نیشینا ساکی صبح زود روز ششم در باغ کشاورزی به نام باغ زندگی جاوید کار میکرد که بمباران شد در آن لحظه ساکی داشت درون که تزار گوشه فیل اقیانوسی وژین میکرد چون دستمالش را روی سر انداخته و چون باطمه زده بود برگهای پهن گوشه فیل مانعی برابر نور جهید شده بودند از مرگانی فرار کرد اما بسیار ترسید برای مدتی درون کشتزار گوشه فیل اقیانوسی به پشت افتاد چون آسمان را نگاه کرد به نظر کاملا سیاه میآمد شهرک های و نیشیناکا در آتش شده بودند فکر کرد که این حالت بیفایده است چهار دست و پا به سمت کنار رودخانه حرکت کرد آب رودخانه هم آلوده شده و به رنگ ارغوانی درآمده بود فکر کرد آخرا زمان است و ترسید آتش لحظه به لحظه گسترش پیدا می کرد. بعد از بیوه شدن آن لحظه تنها زمانی بود که ساکی دلش را قرز کرد، تصمیمش را گرفت و به آب پرید، به قایقی خیزرانی چنگ زد و خود را در آب پنهان کرد. آن قایق یکی از های خیزرانی بود که شهرداری برای فرار مردم در زمان بمباران تدارک دیده بود. وقت مد، عمق رودخانه یک متر شده بود. بعد از مدتی غروب شد و احساس کرد سردش شده. چهار دست و پار روی قایق آمد. لحافی را که آب میآورد روی قایق انداخت. تک الواری شکسته را پارو کرد و به پایین دست رودخانه پناه برد. با این همه در قسمت لاله گوش، پشت گردن و کتف دچار سوختگی شده بود. دو شب پیش بود که برای کمک خواستن از نشینا آمد. آن موقع هنوز می توانست عادی راه برود اما از دیروز ناگهان ضعیف شد و تا مدتی قبل در حالی که ناله می کرد زنده ماند چون مراسم تدفین شخصی خارج از شرکت را انجام دادم اینها را در دفترچه یادداشت ثبت کردم قبلا باغ زندگی جاوید در داخل شهر هیروشیما بوستانی عمومی کنار رودخانه بود از بهار سال گذشته و در تبعیت از سیاست ملی استفاده از زمین های خالی به طور کامل به کشتزار تبدیل و در آن بادمجان، خیار گوجه و غیر کشت می‌شد. هنگام بمباران افرادی که در آن اطراف بودند یعنی دختران سال اول دبیرستان که در آنجا خدمت می دانشآموزان دبیرستان دخترانهی وابسته به شهرداری و غیره همه مردند کسانی مثل میتسودا ساکی که تا امروز زنده ماندند در زمره کسانی بودند که عمری دراز داشتند. رئیس کارخانه فکری دیگر کرد و گفت آقای شیزوما بعد از تمام کردن تلاوت سترای امشب زودتر بخواب. میخواهم فردا یک بار دیگر برای درخواست از شعبه تولید لباس بروی. فکر می کنم توضیحات تو در باری به دست آوردن استقلال تسلیم شدن است. میدانم دانم خسته ای. اما اگر شجاعت نداشته باشی گرفتار میشویم. این احساس را داشته باش که شاید صدها بار بروی این کار بیهوده است. با حالی خراب گفتم اگر اینجوریست لازم است از سروان نورا معرفی نامهی بگیریم و بعد برای مذاکره بیواسطه به معدن زغالسنگ او ببرفیم علاوه بر این دیگر شرکت زغالسنگ وجود ندارد پس دلیلی ندارد که بخواهیم از قوانین آن تبعیت کنیم گفتنش ساده است اما سروان او بیرون رفته من امروز پنج تا شش بار به دفتر گروهان مخابرات در طبقه دوم سر زدم اما فقط مأموری تای آنجا بود وقتی هم پرسیدم سروان کجا رفته جواب داد از اسرار نظامی است وقتی هم پرسیدم کی بر می گردد باز هم همان جواب را داد مدتی قبل هم وقتی به انبار سر زدم فهمیدم فقط برای دو روز دیگر زخار سنگ باقی منده. چه کار کنیم؟ رئیس همانطور که حرف میزد؟ سرش را میان دست هایش گرفت. شاید هم بیهوده نباشد. فردا صبح زود می میدانستم کاملا بیهوده است. اما قرار شد یک بار دیگر به شعبه تأمین لباس بروم. یک بار دیگر باید در آوار سوخته سرگردان می شدم. وقتی تلاوت سوترای مراسم تدفین را تمام کردم و به خانه برگشتم، بوی کلوچه برنجی حتی از پشت پنجره هم که برای حفاظت بسته شده بود احساس میشد. متوجه شدن با سس سویا پپخ شدهاند از در پشتی وارد شدم. هر دو مهمان بیدار شده و همراه شیگکو و یاسوکو میز غذاخوری را احاطه کرده بودند. میز غذاخوری مجللی از چوب آبنوس که صاحبخانه به امانت داده بود. روی میز غذاخوری ای پر از کلوچه برنجی تبخ شده در سس سویا، بشقاب‌های کوچک و غیر چیده شده بود. احتمالا کلوچه‌های برنجی بود که مهمانان به عنوان سوغات آورده بودند یاسوکا و شیگکو با ولع کلوچه برنجی می‌خوردند شیگکو متوجه من شد و با صدایی واضح گفت برگشتید ما زودتر شروع به غذا خوردن کردیم یاسوکا هم گفت امو خوش آمدید ببخشید زودتر غذا خوردیم کلوچه ها که درست شدند دیگر نتوانستیم تحمل کنیم. غیر از کلوچه ها برنج برشته هم هست، نیگیری هم باقی مانده. اول با گفتن ببخشید باعث نگرانی شدیم با مهمانان احوال پرسی کردم و برای مخفی نگه داشتن سوختگی روی گونه چپ هم روی پله چوبی نزدیک ورودی نشستم. هر دو مهمان با چشمانی قرمز عین چشم خرگوش به من خیره شدند و شروع به گریه کردند. یکی از آنها برادر تنی بزرگتر شیگکو به نام واتانابه ماسائو و دیگری پدر واقعی یاسوکو به نام تاکامارو یاشیو بود تاکامارو حالت نشستنش را تغییر داد دو دستش را بر زانوهایش یشگو و در حالی که سبیلش به دهانش آمده بود شروع به بالا کشیدن دماغش کرد شیگکو و یاسوکو حالشان گرفته شد و دست از خوردن کلوچه کشیدند واتانابه اشکهایش را پاک و به چهره من نگاه کرد. دوباره اشکهایش را پاک و به چهره من نگاه کرد و یک کلمه هم حرف نزد. خیلی سعی کردم گریه نکنم. اما ناگهان چیزی به دلم آمد و آب بینیم تا لب بالایی سرازیر شد. بنابراین پشتم را به آن دو نفر و باسنم را روی پله چوبی جابجا کردم. از اینکه همگی سلامت هستید خیلی خوشحالم. واقعا خوشحالم به گفت جای شکرش باقی است که زنده مانده اید فکر نمی کردیم دوباره بتوانیم توانیم ببینیم اتان با این همه آمدیم تا دستکم محل مرگتان را پیدا کنیم واقعا خوشحالم تا کامارو هم با صدایی بغزالود گفت یاسوکو همیشه از لطف و محبت شما دو نفر برخوردار شده حالا هم با این اطمینان آمده بودیم که او در جوار شما به آن دنیا رفته. در روستای کبا و در روستای هیروسه همه این طور فکر می‌کنند. چای را که یاسوکا آورده بود نوشیدم. در همان حال نشسته گفتم بسیار نگران شدید. واتنابه تعجب دهاتی وارش را با کلماتی پراکنده بیان و تا کامارو هم هماهنگ با او سخنانش را تکمیل کرد. چیزی که آن دو نفر شنیده بودند این بود که در هیروشیما بمبی بسیار قوی، بمبی با قابلیتهای بسیار ویژه انداخته شده. یک سوم تمام مردم، سربازان و گروه های و امدادی در دم کشته شدند. یک سوم دیگر هم زخمی کاری برداشتند و در یک سوم آخر هم یک نفر نبوده که زخمی نشده باشد. خانه ها بدون برجاماندن حتی یک واحد همه سوختند. این به هیچ عنوان شایعی بیاساس نبود، بلکه وضعیتی واقعی بود. چنان اطلاعاتی از غروب روز ششم به صورت شفاهی وارد روستای کباتاک شد و در روز هفتم و هشتم هم پی در پی ادامه یافت. شایعه نسبت به اطلاعات اولیه بسیار پررنگتر شد. کسانی که در هیراشیما زخمی شده بودند، پشت سرهم هم به روستاهای اطراف برمیگشتند کسانی بودند که بلا فاصله بعد از رسیدن به خانه می‌مردند. کسانی هم از درد به خود می‌پیچیدند. در روستای هیروسه پزشک متخصص بیماری‌های اطفالی زندگی می‌کند که به خاطر برنامه پراکندگی از کوبه به این روستا آمده. او پس از معالجه این افراد گفت: بیماری ناشناخته است، به عبارتی بیماری درمانی است که نمیتوانم کاری کنم. برای درمان سختگی ها پماد سوختگی داد. و به بیمارانی که از درد شدید مینالیدند آمپول پانتوپون تزریخ کرد. اما دکتر یک جین از این آمپول بیشتر نداشت و بیمارها چند نفر بودند پس در عرضه یک روز داروها تمام شد. زخمی هایی که به روستای کوباتاک برگشتند دو نفر بودند و هر دو هم سوختگی و شکستگی استخان داشتند وقتی این دو نفر را ملاقات کردند و وضعیت حالهش شهرک سندارا را در داخل شهری روشیماجویا شدند، آنها گفتند که خانه ها همه سوختند و آنچه چه بر جا مانده فقط زخمیها هستند. راهی برای فهمیدن سلامتی یا عدم سلامتی ما پیدا نکردند. اگر ما زخمی شده و زنده مانده بودیم، باید برمیگشتیم. اما چون برنگشته بودیم، آنها فکر میکردند مرده‌ایم. ایم. هرچه باشد دلیلی نداشت در چونان دشت سوخته ای که یک خانه هم در آن باقی نمانده بود، کسی زندگی کند. پس فکر کردند حتماً مرده‌ایم. اگر مرده هم بودیم نباید به همان حال رهایمان میکردند دستکم کم باید استخوان را پیدا میکردند واتانابه چنین این فکر کرد و صبح روز دهم ده اقوام را فراخواند پنج نفری که جمع شده بودند پس از مشورت قرار گذاشتند که بلافاصله فاصله و تاکامارو به نمایندگی به هیروشیما بیایند پس با فکر مرگ ما همراه کلوچهی برنجی و برنج برشته آزم شدند چیزهایی که مناسب پیشکش به بودا در چنان موقعیتی بود. هنگام ترک روستا وقتی برای خداحافظی به مادرم سر زدند، خواهر بزرگترم همراه دو اش از شهر فوکویاما برگشته بودند. مادرم هیچ شکی نداشت که ما سه نفر زیر آوار مانده و مرده‌ایم. بنابر این محراب بودا را با عکس سه نفرمان تزیین کرده درون سلیوان آبریخته، گلهای کوکب درونشان گذاشته و به بودا پیشگش کرده بود. آقای وطنابه و آقای تاکامارو، اگر لطف می کنید و به هیروشیما می روید، دست کم بخور هم با خود ببرید. بخورها را روی خرابه ها آب و برگهای نورس روستای کبا تاکه را هم ببرید. بخورها را در آوارها ها سوزانید و آب و برگهای نورس را بر آن بپاشید. شیگه ماتسو کنپناشی دوست داشت پس لطفا همراه خود میوه کنپناشی هم ببرید مادرم این را گفت شیشه خالی ترشی را از آب چاه پر کرد بخور و برگ‌های های نورس درخت فکاراشی را در کاغذی پیچید و آنها را به ماسا آداد دو ستا از میوه های را در حالی که نارست بود از روی زمین برداشت و در جیب کوچک کول پاشتی ماسا او قرار داد. ارتفاع روستای کباتاکی از سطح دریا پانصد متر است. روستایی در دشتی مرتفع که سه طرف آن را کوه احاطه کرده. این روستا در حوزه های آبریز روده آشیده که در شرق شهرستان هیراشیما به سمت جنوب جاری است و رود اودا قرار دارد که به سوی شهرستان اوکایاما جریان دارد. در زمان قدیم یکی از مراکز زمامداری کیوشو اینجا قرار داشت که هنوز بقایای آن به مانده است. اما در حال حاضر اینجا در مسیر خلوت و بیرونقی قرار دارد و از لحاظ جابجایی و حمل و نقل هم مشکل دارد. واتانابه و, و تاکامارو سراشیبی امتداد در روی رودعاشیدار را در زمانی نزدیک به دو ساعت پیاده پایین آمدند. وقتی به محلی به نام او اوگیری نفوچی رسیدند کامیون زغالسوزی بدون بار آمد و با درخواست از راننده سوارش شدند. بعد از ساعت ده شب آنها به بقایای سوخته شهر فکویاما رسیدند. شهر فکویاما در روز هشتم این ماه بمباران هوایی شد. به جز کناره شمالی بقیه شهر سوخت و حالا در آن حتی یک شعلی آتش هم وجود نداشت. دو نفری در تاریکی به جستجوی مسیر پرداختند تا سرانجام، توانستند خطوط راه آهن مسیر سانیو را دهند. در امتداد این خطوط به غرب حرکت کردند تا سرانجام به جایی رسیدند که به نظر می ایستگاه باشد. خواستند ولیت بخرند اما هیچ کدام از کار ایستگاه را پیدا نکردند. برای مدتی سر پا با مردی صحبت کردند که درون تاریکی شناخته نمی شد. از صدایش حد زدند که حدودن پنجاه ساله و لحجه شبیه توکیوی است. آن مرد حدود یک ماه پیش در برنامه پراکندگی به شهر فکویام آمده بود. او درباره وضعیت بمباران هوایی صحبت کرد که خانهاش را در آن است دست داده بود. حدود نیمه شب شست فرون هواپیمای جنگنده بی بیست و آمدند. بر تپه های اطراف خیابان های فکویاما منور های بیشمار انداختند و بعد از آن بمباران موجوار اصلی خود را انجام دادند. هنگامی که بومبهای آتحزا افتادند، زا زا صدا می کردند. این بمب‌ها هنگام برخورد با زمین صدای دوگان نمی‌کردند، بلکه صدایی مثل دوتا دوتا داشتند و نوری شدید پخش می اینکه این که به یک بار پنجره ها صدای پین کردند، انگار بخواهند بشکنند، بسیار تأثیرگذار بود. آن مرد این حرفها را چند تا از آن ها درون چیزی مانند حلب پیچیده و با رشته سیمی برنجی بسته شده بودند به احتمال زیاد وقتی بمب از آسمان می افتادند رشته های سیمی باز، حلب ها گشوده و بمب های آتکسا در آسمان پخش می شدند و صدای زازا ایجاد می کردند پین هم احتمالا صدایی بود که از افتادن رشته های سیمی روی سنگ های حیات بلند می شد قلعه فوکویاما هم بمباران شده بود. بمب‌های پنجره پنجره‌های طبقه سوم برج پنج طبقه آن وارد شدند، تیرک‌های بزرگ آتش گرفتند و برج فرو ریخت. برجک حمام یودوگیمی هم که از قلعه فوشیمی در کیوتو به اینجا آورده شده بود سوخت. در ادامه آن برجک سوزومی و برجک رصد ما هم سوختند. صخره‌ها هم به رنگ سفیدی سوختند. قسمت های باقی مانده فقط برجک طبقی به اسم فوشیمی و دروازی فلزی بود. پایگاه زده نیروهای خودی هم در قلعه وجود دارد هم کنار پل فلزی رودخانه آشیدا. اگر هواپیماهای دشمن در ارتفاع بسیار بالا پرواز کند از طرف ما هیچ گلوله شلیک نمی شود. اما در واقع به 29 و در ارتفاع بسیار پایین پرواز می کردند. و حتی یک گلوله هم شلیک نشد. مانند جنگلی خاموش بود، تحرکشان مثل کوه بود به هر حال مخفی کردن پنج شاهینی بود که هنوز توان داشت. مردی که به نظر میرسید باربر است این حرفها را زد اما نفهمیدند طعنه بود یا تمجید درون ساختمان ایستگاه فکوویی ما هم افرادی جمع شده بودند که خانه هایشان سوخت و از بین رفته بود. تاریکی و ظلمت بود پس به خوبی تشخیص داده نمی شد. بار دیگر در امتداد خطوط راه آهن حرکت کردند. در آبادی به نام گبون، سمت غرب و در سمت ایستگاه بینگا آکاساکا آتش دیده می شد. به نظر می آتش جایگاه های نظارت بر روشنایی هاست. به هر حال هر دو نفر با نیت خرید بلیت در ایستگاه آکاساکا با لمس سرنگشتان در مسیر خطوط راه آهن قدم زنان پیش رفتند. اینوام گذشتن از پل فلزی رودخانه آشیدا ظلمت و تاریکی مطلق حاکم بود پس مانند میمون چهار دست و پا و با گرفتن یکی که تراورس های چوبی حرکت کردند با این برنامه که اگر قطار خط بالایی بیاید به خط پایینی و اگر قطار خط پایینی بیاید به خط بالایی بروند در حالی که هی hey, هی hey, اینجا اینجا صدا میزدند از پل گذشتند اما از اول تا آخر با کول پشتیشان مشکل داشتند وقتی سرشان را پایین می آوردند، وزن کول پشتی برگردن و سرشان فشار می آورد. و وقتی آن را صاف روی پشتشان قرار می دادند و به حالت چهار دست و پا در می آمدند، دور شکمشان می چرخید، بدنشان به لرزه می و تعادلشان به هم می و مجبور می شدند محکم ریل را بگیرند نمی دانند چند بار عرق سرد بر آنها نشست اما بدون هیچ حادثه‌ای به ایستگاه آکاسا رسیدند. کارمند میان میانسال ایستگاه بعد از شنیدن توضیحاتشان بلیط هیروشیما را با آنها فروخت، اما گفت نمی‌داند قطار چه ساعتی می‌آید. چهار جز انتظار نداشتند. آهسته شروع به نهار خوردن کردند که قطار مسیر برگشت آمد. فقط سی نفر از مسافران روی سکو سک پیاده شدند. نصفی از این افراد زخمی و نصف باقی مانده هم افرادی بودند که برای جستجوی بستگانشان به هیروشیما رفته بودند فقط 20 نفر از افراد منتظر با صدای بلند شروع به صحبت با افرادی کردند که از قطار پیاده شدند پیدا نکردید پیدا کردید خانه چی شده بود با آشنایی برخورد کردید به نظر نمیرسید یک نفر هم اقوامش را پیدا کرده باشد بین افراد مردی همراه بچه، زنی که فرزندش را وغل کرده بود، برادران و خواهران با هم و زخمی ها از قسمت کنترل بلیط بیرون رفتند و در تاریکی ناپدید شدند. با این اوزا ما هم بیهوده آمدیم. اما شاید در آوار خانه استخوانهای آنها را پیدا کنیم. الان نباید برگردیم. دو نفری با هم صحبت کردند. بعد ساعت یک بامداد سوار قطار شدند. بعد ساعت پنج به هیروشیما رسیدند و وقتی خرابه های خانه ما را در شهرک صدا پیدا کردند ساعت حوالی هفت صبح بود نوشته ای مبنی بر اینکه کجا پناه برده این نصب نکرده بودیم اما چون واتانابه قبلا دو سه بار سر زده بود با دیدن درخت کاج و چشمه خانهمان را شناخت خانه ما سوخت و زغال شده بود پس صدا نزدند وسیله هم برای کندن خاکسترها نداشتند و به هر حال یقین کردند که جایی مرده‌ایم. بنابر این هر جا هم که مرده بودیم با این نیت که اینجا مرده ایم بخورها را آتش زدند و کنار چشمه قرار دادند. آب شیشه ی ترشی را پاشیدند و برگ های نورس درخت فوکراشی را اطراف درخت کاج نیم سوخته پاشیدند. میوه ی را هم مقابل بخورها گذاشتند. فردی که نمی‌شناختند آنجا آمد و گفت: "دنبال آقای شیزو میگردید. او خودش را نکاو معرفی کرد که در آلونکی در آن نزدیکی زندگی می کرد. آقای نکاو به آنهای اطلاع داد که آقای شیزوما همراه همسرش و دختر یا سوکا سه نفری به شرکت واقع در فرویچی نقل مکان کردند. وقتی پرسیدند که سه نفرشان زخمی نشده اند، جواب داده که فقط آقای شیزوما زخمی کوچک در گونه داشت اما زخم سطحی بود. قسمت بیشتر مسیر رسیدن به فرویچی را آقای ناکاو به آنها یاد داد. و تنابه نقشه ای را که آقای ناکاو با زغال بر خاکسترهای سطح زمین کشیده بود در دفترچهش نسخه ورداری کرد. با تکیه بر آن نقشه و پرسش از چندین نفر در طول راه تا ایستگاه یاماموتو پیاده رفتند. از آنجا با تراموا به فرو آمدند و از شرکت محل خانه را فهمیدند. همه ای اینها بعد از ساعت دوازده و نیم اتفاق افتاده بود اگر چنین بود چرا آقای ناکاو وقتی من در خرابه های در شهرک سندا ملاقاتش کردم چیزی درباره آنها به من نگفت بیشک به خاطر حواس پرتی بود دیروز وقتی شیگکو و یاسوکو به محل آوار خانه در شهرک سندا رفتند برگ های سبز درخت را دیدند که کنار ریشه ی درخت کاج پاشیده شده بود بخورهای اطراف چشمه را هم دیدند بر برچسب شیشه ی ترشی هم تصویر دختری روستایی که نوارهای قرمزی بر آستین داشت توجهشان را جلب کرده بود. شیشه ی ترشی بدون هیچ آسیبی روی خاکسترها باقی مانده بود و میوههای کنپوناشی هم نارس بودند. شیگکو فکر کرده بود خیلی عجیب است. من به هیچ وجه متوجه آنها نشده بودم. مادرم تصمیم داشت از میوه درخت کنپوناشی در مراسم طلب آمرزش برای من به عنوان پیشکش استفاده کند. تحجاب کردم هنوز به یادش مانده است در کودکی نمی توانستم منتظر افتادن میوه های درخت کنپاناشی به منم بنابراین بیشتر اوقات سنگ های کوچک سمت شاخه ها به همین دلیل پدرم سرزنشم هم می کرد سنگ پرتاب می شدند و به سخف حمام می خوردند. هنوز همین را به یاد دارم. طبق حرفهای های مهمان ها اقوام و آشنایان برای دلجویی به خانه پدریم در شهرستان می آمدند. هر چند ظاهر کار دلجویی بود، اما در واقع مضمون حرف های آنها آشکارا تسلیت بود. فقط یک نفر از همسایه ها که صاحب خرابار فروشی کاننون بود، حرف دیگری زد. از گذاشتن عکس در مهراب بودا حذر کنید. زیرا خوشیام نیست. اگر باز هم صبر کنید، حتما به سلامت باز خواهند گشت. این را به مادرم گفته و بدون ابراز هم دردی برگشته بود. فردا صبح زود میخواستم به هیروشیما بروم، پس از مهمانان خواستم و برای خوابیدن به سه ستاتامی کناری رفتم. از مهمان شنیدم که حتی در روستای کباتاکه هم ریشه کاج ها را می کندند. مادرم هم برای کندن ریشه کاج به کوه می‌رفت. پس دست های پیروفر فرطوتش تاول زده بود. از ریشه درخت کاج روغنی به دست می آید و در موتور هواپیماهای استفاده می شود که به بیست و را ساقط می کنند. جنرالی از نیروی دریایی به روستا آمده و مقابل همه این حرف را زده بود. بعد از آن گروه های خدماتی کندن ریشه کاج در روستا شکل گرفت و این کار شروع شد. کلبه های کوچکی هم کنار رود درون دره در برای روغنگیری ساخته شد. اینها خاطرات دیشب بود.